من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد قالت أم هشام ما حفظ القاف والقرآن المجد، إلا من في النبي عليه الصلاه والسلام يقرأه كل جمعة على المنبر ام هشام رضي الله عنها ميقاد سوره ق الزبان الرسول الله صلى الله عليه وسلم برسر سر منبر حفظ كردن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوره ق را برسر از گاهي بر سر منبر ميخوندن و تلاوت مي كردن و اصحاب گوش ميدادن چنانچه اينجا اين زن صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم از اخر من مسجد میشینید و حفظ میکرد. اون چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم این سوره را تلاوت میکردن و میخوندند. این سوره چه درش هست؟ چه در در این سوره هست که نیاز ما بدونیم. چه نیازی در این سوره هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم بر منبر جمعه تلاوت بکند الله جل و علا این سوره را چنین آغاز میکند. قاف والقرآن المجید. قاف با این حرف الله قرآن را آغاز میکند. سوره های قرآن با این حروف آغاز شده جای الف جای حامیمه سرها با حروف حروفی که بشر عاجز بودن از اینکه اون نطقشون را بنویسن الله خوندن و نوشتن برای ما آسون کرد با این حروف هست که قرآن را میخونیم قاف یکی از اون حرفها هست که ما میتونیم سخنمون اون معلومات خودمون را حیم بکنیم و بنویسیم و حرفمون را انتقال بدیم الله چنین علمش را با این حروف به ما انتقال میدهد قاف والقرآن المجید این قرآن مجیده. این قرن آن شریفه شرافت داره آن کسی که این قرآن را بگیرد شرف پیدا می کند پیدا می کند الله جل و علا با ارزش می شود با مقام می شود این قرآن به انسان شرف میدهد اون روزی که انسان میخواهد از روی پول سرات رد شود این قرآن هدایتش می کند قرآن کسانی که اهل تلاوتش باشن اهل تدبر در معناش باشن اونها را به سوی بهشت هدایت می کند و کسان دیگر که روی گردان از این قرآن شدن کسان دیگر را وارد جهنم می کند و به جهنم مینداازد بله همین قرآن است این قرآن است که یا شفاعتی برای تو در روز قیامت و یا شفاعتی بر علتون می شود که مستحق جهنم شوی این قرآن هدایت گره اون نوری است که به دست تو الله می دهد تا بر پل سراد از روی جهنم عبور بکنی فرصتی است در این رمضان برای ختم قرآن برای تدبر در قرآن برای نشستن در حرقات قرآن تا اینکه انسان بداند الله جل و علا چه سخنی بهش گفته این قرآن با ارزش اگر تو بهش ارزش دادی از وقت خودت از وقت خودت از دنیای خودت زدی برای این قرآن. نشستی پای تراویح اون قرآن را که تلاوت می شود بهش گوش فرادادی در قرآن و در تفسیر رو باز کردی این قرآن هدایتگرت است به سوی بهش اما اگر ازش روی گردان شدی و این فرصت در این رمضانی که دست پای شیطان بسته شده غنیمت نشمردی روی نه به این قرآن مجیدی که این چنین ترافت داره نزد الله جل و علا این سخنانی که الله با تو حرف زده بهش ارزش قائل نشدی وای بر اون کس وای بر اون فردی که به قرآن ارزش قائل نشد و اون قرآن روز قیامت شفاعتی بر علیه او شد و او را در جهنم انداخت و المجید الله جل و اعلی این سخنانش قسم دارد یاد میکند قسم یاد میکند به این این قرآن یا این اینکه به تو شرف میدهد و تو را نجات میدهد و یا اینکه تو را در جهنم میاندازد حق این قرآن را بدون ارزش این قرآن را بدون بل عجب ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب بل عجب در شگفتن اون مشرکین از این که پیغمبری ما بفرستیم با زبان خودشون باهاشون حرف بزنه بشری باشه از خودشون ملائکهی نباشد در تعجبن در شگفتن از این که بشری بیاد حرف ما را بهشون برسونه فقال الكافرون هذا شيء عجیب کفار میگن این عجیبه چطوره چرا از میان ما این انتخاب بشه؟ چرا فلانی انتخاب نشه چرا پیغمبر ما اهل ثروت و مال نبود خب اگر اهل ثروت و مال بود به درد چی میخود دیگه امتحان ما به درد چی میخود مردم به خاطر پولش ایمان میوردن بله رسول الله صلی الله علیه وسلم نیمدن که به ما درهای دنیا را باز بکنن نیمدن که به ما راه دنیا را نشان بدن انتوم اعلم به امور دنیا چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماین شما به امر دنیاتون آگاه دارید. هر کسی میدونه که چکار بکنه در این دنیاش ولی من آمدم که راه آخرت را نشانتان بدم اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد مقرمش انسان تبديل بخاك وخاك سر بش بعد باز بار دیگر در صحنه قیامت دوباره مثلا قیامتی باشه که دوباره اون خاک و خاکستر اون جسدی که فرسوده شده باز بگرده قد علم نمتن قص الارض منهم و عندنا کتاب مگر الله جل وعلا میگه ما نمیدانیم که کی میمیره و کی جسدش در زیر خاک فرسوده میشه میگه ما نمیدونیم که بر سر اون جسد بعد از مرگ چی در میاد بله ما میدونیم و عندنا کتاب حفیظ در لوح محفوظ همه اینها نوشته شده که کی سعادتمنده و کی شقابتمنده در زیر اون قبر بعد از اون که اون جسد فرسوده میشه در سرای برزخی شبونه خواهد بود میدونیم که در بهشت به قبرش باز میشه که در جهنم به قبرش باز میشه الله میداند که بعد از مرگ ما شحال روزی خواهیم داشت بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج بل كذبوا بالحق اونها حق را تکذیب میکنن سخنان ما را تکذیب میکنن باور ندارن نمیخوام باور بکنن که دوباره روز قیامتی و رستاخیزی هست لما جاءهم وقتی که الان این پیغمبر اله برگزیده شده و داره بهشون حق را بازگو میکنه فهم فی امر مریج اونها سرگردونن مستربن شک دارن افلم ينظروا الی السماء آسمان بکنن بوکونان فوقهم بالای سرشون نگاه اون ستاره ها نگاه اون سیاره ها نگاه اون فلک نگاه اون خورشید و نگاه اون ماه نمی کنن که چجونه در اون مدارشون حرکت میکنن دور هم دیگه میچرخن نمیخوان ببینن که چگونه اینها این اجرام آسمانی در فضا نگه داشته شدن برای کیه؟ این خورشید برای کیه؟ برای کی میتابه؟ برای کی میچرخه؟ مگر نه این است که برای شماها هست که الله را بشناسید و او را بپرسید. افلم ینظروا الى السماء فوقهم کیف بنیناها و نمی نمیبینید بنای این ساختمان آسمان چگونه هست؟ چگونه اینچینین ستارگان چیده شدن در آسمان؟ دقیق ستاره ای از جاش تکن نمیخوره. این چنین آسمان را زینت و زیور بخشیدن؟ اینچینین آسمان زیباست؟ شب نصف شب نگاه آسمان کن نگاه کن تدبر کن ببین الله چه خلقی آفریده ببین که تک تک اون نقطه ها از این زمین تو میلیون ها بار بزرگتره همین خورشیدی که تو میبینی سی ست هزار بار فقط از این زمین تو گستردهتر و بزرگتره امالها من فروج مگر شما شکافی در آسمان ها میبینید خللی ایبی در این آسمان ها هست والله خللی ایبی در آسمان ها نیست آسمان ها صفت و محکم الله استوار اون ستارگان را در آسمان قرار داده که تكن نخورن از جاشون جاشون بیسن از مدارشون خارج نشن و ارض مدد نه نمی بینید این زمین را چگونه گسترده قرار دادیم همچون فرشی گسترده و القینا فيها رواسی نمی بینید کوهایی که همچون میخ بر زمین کویده شدن کوها را نمی بینید که اینچنین بلندن و انبتن فيها من کل زوج بهیج نمی بینید از گیاه و علف و انواع گل و انواع میوه که نر و ماده داره و برای خودش هر کدوم سمری داره نمیبینید نمیخواهید ببینید از اون گندم از اون جو از اون برنج از اون انواع میوه از اون درختانی که اینچنین شکوفه میدن و شکوفا میشن تبصره و ذکره لکل عبد منیبه تبصره اینها دلها را باز میکنه بهتون بصیرت میده قلبها را باز میکنه فهم و درک انسان را باز میکنه تبصره و ذکره اینها تذکر آ اینها یاداوریه زمین رو همینطوری انواع درخت و علف و گیاه براتون همینطوری درش قرار ندادیم اینها برای اینه که الله را به یگانگی بپرستید تبصر و ذکر لکل عبد منیب اینها یاداوری برای اون بنده ای که به الله رجوع میکنه میدوند که به سوی الله باز میگرده و میخواهد با دست پر به سوی الله برود و نزلنا من السماء ماء مبارکا باور نمبینید از آسمان زمانی که الله جل و علا فرو میفرسته مبارکا چگونه اون آب برکت داره زمین سرسبز میشه انواع گل و گیاه بر روی زمین میروه نمیبینید اون گل های رنگارنگ فقط با اون آب که از آسمان فرو میاد در بهار ندیدید که سرزمین چگونه شکوفا پیدا میکنه فانبتنا به جنات حب الحصید نمیبینید که همون آب بارانه که جنگل ها با اون سرسبز میشن نمیبینید که باغ و بستان ها در اون کشاورزی میشه و انواع حبوبات در اون کاشته میشه شما نان نداشتید شما گندم نبود جوی نبود برنجی نبود چی می انسان خاک میخورد، آب دریا میخورد، خوب بود برای انسان این چنین الله جل و علا چیزی قرار میداد که از گلوش پایین نره، سنگ براش بیزاش؟ نه والله، الله خلقش رو ها نکرده که اونها رو در این دنیا شکنجه بده یا نانی رو براشون نگذاره، بلکه بهترین نانها، بهترین حبوبات، از عدسش از نخودش برای انسان الله قرار داده، مشرفش کرده که بخوره از اون چیزهایی که دلش میخواد اون کسی که غذای دوست داره در این دنیا میتونه دنبالش بره و از اون بخوره و بیا شامه. والنخل باسقات لها طلع نظید. درخت نخرو نمیبینید این چنین قرارش دادیم که بزرگ بشه، بلند بشه. این چنین بلند قرارش دادیم بر روی زمین لها طلع نظید. هم بر اون قرار دادیم از همون با در اون بلندی که پر از سمر بشه از اون رتبش از اون خرماش نمی بینید چگونه سمرش اون میوهاش اون رتب و اون خرما برهم چیده شدن کی اونها را اینچنین چیده به نظر شما رزقا للعباد روزیتون در همینه و احیینا بهی بلده میتا اینچنین همونطور که این زمین را می بینید که سرسز میشه شه همونطورم روز رستاخیزه همونطورم شما زنده می شید همونطور که این زمین زنده شد با اون آب باران، كذلك الخروج انشينی ناز روز محشر و روز رستاقیز کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود قبلش شما قبلش ای مشکین کسانی بودن کتک زیب میکردن روز قیامت و روز رستاقیز کی تکذیبش کرد قوم نوح اصحاب رس و ثمود قوم نوح پنجه سال الله بهش مهلت داد که توبه بکنن پنجه سال نوح اونها رو دعوت داد واللهی روز قیامت حقه قبول نکردن الله بهش دستور میده کشتی را بسازه بر الله آسانه کنهایی که نافرمانی بکنن در یک چشم به هم زدن نابودشان بکنه نوح سوار کشتی میشه و دستور میده از الله بهش که از هر جفتی حیوانی را با خودش بر اون حمل بکنه نوح سوار کشتی میشه الله با رعایت خودش او را حفظ میکنه بر اون موجها آسمانها شکاف بر میدارن با اون باران با اون طوفان زمینم همینطور شکفته میشه از اون چشمه ها از پایین آب از بالا آب آب همه را فرا میگیره همه کفار را نابود میکنه الله چنین برش عقوبت کردن و نابود کردن و همچنین اون قومی که پیانبرشون در چاه انداختن اصحاب رس الله نابودشون کرد و همچنین قوم سمود الله نابودشون چگونه الله نابود کرد قوم عاد قوم سمود؟ چگونه بود؟ آیا آسان بود انسان باید قرآن رو بخونه؟ انسان باید بدون از قصه های پیامبران. هود علیه الصلاۃ و السلام چقدر دعوت داد و سب کرد در مقابل قومش. آخرش چی شد؟ الله جل و علا یاد میکند که بر آنها باد سرد سوزانی فرستادیم، ریحان سرسرا. اون باد سرد سوزان. اون طوفانی که اونها رو از روی زمین گرفت و به فلک برد و با و از اون آسمان آنها را با سر بر زمین کوبید الله جل و علا لحول ورده شدن بر روی زمین بله اینچینین از عقوبت الهی هفت شب و هشت روز اون سرما بر اونها ادامه یافت و نوعذاب یک روز دو روز نبود بر روی این زمین غیر از روز آخرت قوم را چگونه الله نابود کرد الله جل و علا نیازی نداره که سببی بکنه از اون اسباب دنیاوی از اون آب باران یا طوفانی سر فقط داد و فریادی فقط بانگی از آسمان اومد چی شدن قوم سمود؟ صالح علیه الصلاة والسلام اونها رو دعوت داد گفت روز قیامت حق ولی گوش ندادن بیایید بشینید پای کلام الله ننشستن چی شد آخر عقوبت اونها؟ اونها شدن همچون خاک سری بر روی زمین با چی؟ با یک بانگ و فریادی از آسمان ها این چنین است؟ برای الله عقوبت کردن و عذاب نازل کردن وعاد و فرعون و اخوان و لود وعاد ندیدید چی شد؟ و فرعون ندیدید چی شد وقتی که پشت سر موسا در اون دریا میاد چگونه او را در دریا غرق میکنه و اخوان و قوم و را ندیدید فرشتگان چیکار کردن سنگ از آسمان که به طرف اونها فرستاده شد بعد فرشتگانی که اومدن اون زمین را از جا کندن و بر سر اونها بارونه کردن آیا بر الله سخته که این چنین عقوبت بکنه و اصحاب الایکه و قوم تبع اون کسانی که الله بهشون باغ و ستان داد اصحاب الایکه قوم شعیب و قوم تبع اینها که در یمن بودن اونهایی که الله نابودشون کرد با عذاب و عقوبت خودشون کل کذب الرسل تمامی اینها پیامبران الهی را تکذیب کردند، ارزش به پیامبرشون ندادند، ننشستن پای حرف سخن پیغمبرشون فحق وعید بعید الهی حق عقوبت الهی بر سر اونها حق افعینا بالخلق الاول سخت بود مگر بر ما که شما را از هیچ چیزی بیافرینیم از اون آب بیافرینیم سخت بود آیا بر ما فکر میکنید که سخته که دوباره خاک سر شدیم به رویانیم بلهم فی لبس من خلق جدید آنها متحیران آنها در شکن از اینکه روز رستاخیزی دوباره باشه ولقد خلق الانسان و ما توسوس به نفسه ما هستیم آفریننده انسان و میدانیم در دلش چی میگذرد و شیطان چی وسوسهش بس میکنه دلش چی میخواد میدانیم که شیطان چه وسوسهش بس میکنه میدانیم اون فرشته بهش میگه و اون ترینش از شیطان بهش میگه الله میگه ما از نفس انسان بهش آگاه تریم و نحن اقرب ایلیه من حبل الورید ما از رگ گردن به انسانها نزدیک تریم چه موقع؟ چطور از رگ گردن به ما نزیگ تریم؟ الله جل علا توضیحش میده میگه اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین عن الشمال قعید ان زمانی که دو تا فرشته برای شما گذاشتیم بر سر دوشتون یکی بر روی دوش راستتون و دیگری دوش چپتون یکی اعمال نیکتون بنویسه و دیگری اعمال بد و ناشایستتون نشستن عوض میشن سوگاه شامگاه الله جل جلاله کتاب ها را به دستشون داده که اعمال ما را بنویسه الله ما را رها نکرده همینطوری هر کاری دلمون خواست انجام بدیم ما را برای عبادت آفریده برای اینکه فرشتگان پرونده اعمال نیک ما را پر بکنن نه اعمال بد و ناشایست هر کاری از دنیا خواستیم انجام بدیم ما یلفظ من قول الا لديه الرقيب شما سخن lạ میگید از زبانتون بیرون نمیاد مگر اینکه رقيب عتیدی هست که می نویسه دوتا فرشته الله گذاشته که بنویسن هر آن سر زبانت بیاد هر آن چه که شما انجام بدید در پرونده شما بنویسن این پرونده ها جمع میشه چی میشه در روز قیامت ترازی اعماله همین پرونده ها جمع میشه و وز میشه کی؟ پرونده اعمال نیکش را پر میکنه و کی اعمال بدش را پر میکنه این به دست خودته چی میخوای انجام بدی که برات بنویسن بفرما این دنیاست الله جل و علا این فرصت را به تو داد تو را مکرم ساخت بنده و بشر مکرمه الله آدم را با دستخیش آفرید روحی از سوی خودش در او دمید الله جل و علا این چنین انسان را مکرم کرد با این صورت زیبا با این عقل و درک و خراد. او را با اون نعمت هایی که داده ارزش بهش داده در این دنیا بهش فرصت داده اینچنین الله جل و علا به انسان شرف داد پیامبر فرستاد که سخنانش را بخونند تلاوت بکنند حرفش را بشنون ولی انسان است که ناسق در مقابل این قرآن حتی در رمزان هم حاضر نیست وقتش به عبادت بده وقتش به قرآن بده حسرت بر اون انسانی که دنیا را ترجیح میده این سرای دارفانی را ترجیح میده برای سرای ابدی و اخروی که روزی دیگر پس از آن روزی دیگر نیست و موت حق مرگ حقه همه باید ببینید لکل اجل این کتاب هر کدوم کتابی داریم شاید فردا در همین رمضان نباشیم آخرین لحظاتی باشه که فرصت تلاوت قرآن را داشته باشیم کسی از مرگش نمیدونه کسی نمیدونه تا آخر این رمضان زنده باشه یا نه کسی نمیداند که سرنوشتش چیه آیا جز کسانی خواهد بود که رمضان آمد و از جهنم آزاد شدی یا نه کسی از ما نمیداند چون هیچ کس از فردا خودش نمیدونه و سفید باشیم جلوی الله جلل وعالا اون موقعی که فرشتگان میان ما را قبض روح میکنن و رو سفید باشیم فرشتگان بهشتی بیان قبض روحمان بکنن با کفن بهشتیان ما را کفن کنن و به قبرمون اون روح برگردونن نه اون فرشتگان جهنمی نه اون فرشتگان جهنمی که بر سر و دوش و شونهامون بزنن و روحمون را قبضه بکنن و تیکه پاره از جسدمون بکنن و بعد با کفنهای جهنمی ما را کفن بکنن با های از آتش جهنم ما را کفن بکنن با اون بوهای بد جهنمی ما را کفن بکنن و سپس اون روح را به قبرمون بر بگردونند واللهی سرای اخروی حقه واللهی بعد از مرگ است هم در برزخ هم پس از اون برزخ، اون موقعی که در سور دمیده میشه و همه بر روی این زمین قرار میگیریم و پرونده ها را به دست میگیریم واللهی حقه واللهی اون ملائکهی که الله گذاشته از ملک الموت و سربازانش حقه به سراغ ما خواهند اومد رغم ان فرجون ادرک همدان فلم یغفر له بینی اون شخص به خواب مالیده بشه رمزان بیاد الله او را نبخشه چه خاری و بدبختی بالاتر از این که انسان رمزان بیاد ولی که شروع شوق به عبادت و تلاوت قرآن نداشته باشه بینیش به خاک مالیده بشه اون کسی که رمضان بیاد و قدرش ندونه کی میدونه رمضان دیگر زنده است یا نیست؟ شما میدونید چقدر سال گذشته با ما بودن در این مسجد و الان نیستن ما هم فردا شوید مثل اونهایی که رفتنم باشیم و جاعت سکرت الموت بالحق حق شکی درش نیست ذلك ما کنت منه تحید این همون چیزی هست که تو ازش فرار میکردی هممون از مرگ فراریم از مرگ میترسیم مرض درد میاد فرار میکنیم از بیمار از مریضی میترسیم مواظبیم در رانندگی منتصادف نکنیم و نمیریم از مرگ می و نف خف سور دل کیه در سور دمیده میشه. این همان روزی هست که خلق و خلائق چشم انتظارشان اسرافیل شپور به شیپور را به دست گرفته و رسول الله صلی الله علیه وسلم می پیشانیش و پایین ووردن به طرف شیپور که در آن شیپور بدمه زمانی که الله بهش دستور میده که در آن شیپور بدمه فلک در هم می کوبه الله جل و علا کل من علیها فان همه چیز نابود میشه شه دگر گم می و یبقا وجه ربک دل جلال و فقد الله ميمونات رسول الله صلى الله عليه وسلم اين يرى التلاوهت لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم ملكه افرنش اسالكي لله الواحد القهار ان اللهك قاهر غالب على خلقش كل بيكون ميكنه وخلقش نور نعبد ميكنه والله حق اون لحظهی که اسرافیل در سور میدمه و باز بار دیگر الله جلب و به اسرافیل در سور میده که در سور و در اون شیپور بدمه و تمامی خلق بر روی زمین بروی زنده بشن و كل کل نفس معها سائق و شهید هر در اون زمانی که از زمین بیرون اومده لختوریان فرشته هم راهشه او را میکشه به طرف جهنم و فرشته دیگر گواه میده بر او حق والله اون روز اون روزی که الله شدت بر مجرمان و تبهکاران و ستمکاران اون کسی که نه الله الله را مراقب اعمال خیش ندارست والله حقه اون روزی که الله چنین یاد میکنه از شدت اون روز و ایذ الاغلال و فی اعناقهم و سلاسل و يصحبون اون روزی که فرشتگان زنجیر بگردن تبهکاران و مجرمان انداختن و کشان کشان بر صورت آنها به طرف جهنم میکشند والله و امروز حق والله اون روزی که پرونده اعمال به دستمون میدن والله حق بار ها ما رو رو سفید کن بار پرونده اعمال ما را به دست راسمان بده در اون روز بار رو, رو سفید کن بار الله پرونده اعمال نیک ما را سنگین کن بار الله حس خاتمه ای به ما بده در این دنیا که با نیکی از دنیا بریم به تو پناه میبریم والله از سوء خاتمه از این که فرشتگان جهنمی ان پیور روح ما را قبضه بکند بار الله به تو پناه می‌بریم از اون عذاب قبض بار الله تو به می بریم از عذاب دوزخ از عذاب جهنم بار الله عذاب تحقق بار الله مر حق بار الله به پیامبرت ایمان وردیم بار الله برای بنده به دینه و شریعت هستی برای ما انتخاب کردی بار الله در این دنیا برای ما نیکی بنویس و در آخرتم در اون سرای ابدی ما را خوشبخت کن بار الله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على محمد وعلى آل محمد